الا بستان 21 مه 2008. الا شیشه خالی به دست و ملت عشق به بغل خوابش برده بود. دیوید صبح که به خانه آمد او را در این وضعیت پیدا کرد. لحظه ای به نظر رسید می خواهد به تخت خواب نزدیک شود و روی زنش پتویی چیزی بکشد. اما انگار فکرش را عوض کرد و سریع به طرف حمام رفت. ده پانزده دقیقه بعد الا خودش بیدار شد. صدای دوش گرفتن شوهرش در حمام متعجبش نکرد. دیوید ممکن بود به خانه زنهای دیگر برود، حتی ممکن بود با آنها باشد، اما هر روز صبح بدون استثناء دوشش را، در خانه خودش میگرفت. همانطور همانطور دراز کشیده در تخت خواب به صدای ریزش آب گوش داد. کمی بعد صدای در حمام را شنید. دوباره چشمهایش را بست و خودش را به خواب زد. اینطوری نه او مجبور می‌شد از شوهرش بپرسد چرا دیشب به خانه نیامده؟ و نه شوهرش مجبور میشد جوابش را بدهد. حدود یک ساعت بعد که دیوید و بچه ها از خانه بیرون رفتند، الا باز در تک و تکتنها ماند. انگار رودخانه زندگیش در مسیر همیشگی جریان داشت. کتاب آشپزی مورد علاقهش را باز کرد. هنر آشپزی آسان بعد از آنکه طرز تهیه چند غذا را با دقت خواند، صورت غذای سختی انتخاب کرد که تا ظهر سرش گرم باشد. سوپ مگوی زعفرانی با نارگیل و پرتغال پنجنو نو ماکارونی با سس قارچ و سبزی تازه. دنده گوساله سرخ شده در سرکه با سیر فراوان. سالاد ترپچه و چلم با خامه بعد تصمیم گرفت یک نوع شیرینی هم بپزد سوفله با شکلات گرم دلایل زیادی داشت که آشپزی را اینقدر دوست داشته باشد غذا پختن تنها کاری بود که در آن مهارت داشت و به تنهایی می توانست انجامش بدهد تازه باعث آرامشش هم می شد. گویی با وسایل عادی غذای لذیذ و لطیف پختن و سفره زیبا چیدن روح انسان را نوازش می کند. وقتی در آشپزخانه مشغول غذا پختن میشد، از مرزها و محدودیت های زندگی روزمره که اسیرش شده بود، رها می شد. آشپزخانه تنها جایی بود که می توانست از دست دنیای خارج به آنجا پناه ببرد و زمان را آنطور که می خواهد تنظیم و متوقف کند. شاید لذتی را که بعضی آدمها از عشق بازی می برند، الا از آشپزی می برد. تازه، بی آنکه نیازی به نفر دوم باشد. برای قضا پختن. فقط به کمی وقت، کار و وسایل نیاز بود. همین و بس. تقریبا همه برنامه‌های آشپزی تلویزیون را تماشا می‌کرد. اما هیچ کدام به نظرش واقعی نمی‌رسیدند. اینکه در این برنامه‌ها غذا پختن را با ابداع، خلاقیت، حتی دیوانگی یکی میدانستند به نظرش عجیب می‌رسید. آشپزخانه آزمایشگاه که نیست بگذار دانشمندها آزمایش بکنند هنرمندها عجیب و غریب باشند آشپزی اما چیز دیگری است برای اینکه آشپز خوبی باشی نه آزمایش لازم است نه دیوانه بودن کسی که میخواهد غذای خوب بپزد اول باید الفبای کار را یاد بگیرد هنر آشپزی محصول سالها حتی قرنها تجربه است. انسان باید به جای اختراع چیزهای جدید به تجربه موجود احترام بگذارد. با آنکه که قدیمی یا آموزههای کلاسیک در عصر مدرن به نظر هیچ کس جذاب نمیرسد. الا روبینشتاین در آشپزخانه زنی کاملا سنتگرا بود. در اصل الا کلا به عادتهایش وابسته بود. تقریباً هر روز سر ساعت معینی صبحانه می‌خوردند. تعطیلات آخر هفته به مرکز خرید ثابتی می‌رفتند و اولین یک شنبه هر ماه با همسایه‌ها بساط کباب به راه می‌انداختند. از آنجا که دیوید عاشق کارش بود، همه کارهای خانه به گردن الا میافتاد. حساب و کتاب مخارج را او نگه می‌داشت. مبلمان را او اوس می‌کرد. همه ها را او برطرف می‌کرد. هر وقت در خانه تعمیرات لازم می‌شد، او با عمل بنا سر و کله می‌زد. او بچه‌ها را به باله بسکتبال، تنیس و مهمانی‌های جشن تولد می برد. برای انجام دادن تکالیف خانه او به بچه ها کمک می‌کرد و برای اینکه که هیچ کدام از این کارها لنگ نماند، مدام در حال برنامه ریزی بود. پنج شنبه‌ها عصر الا به باشگاه آشپزی می‌رفت که زنهای خانه‌داری مثل خودش تشکیل داده بودند. اعضای باشگاه غذاهای کشورهای مختلف را بررسی میکردند دستورهای آشپزی قدیمی را با چاشنیهای جدید امتحان میکردند و ظرایف آشپزی را یاد میگرفتند جمعهها هم چند ساعت از وقتش را در بازار محصولات طبیعی میگذراند با مزرعهدارها درباره محصولاتشان صحبت میکرد مرباهای کمشکر را امتحان می کرد. یا برای کسانی که مثل خودش به آشپزی علاقه داشتند، مثلا پختن قارچ پرتوبلای ریز را با جزئیاتش تعریف می کرد موقع برگشتن از بازار اگر در فهرست خریدش چیزی جامانده بود از سوپرمارکت سرراه می خرید شمبه هم دیوید الا را برای شام بیرون می برد. بیشتر وقتها به رستوران تایوانی یا رستوران ژاپنی به خانه هم که برمیگشتند اگر خسته مست یا ناراحت نبودند تماس کوتاه و دست باچه نوازش های سطحی دیگر می توان گفت هفته ها و ماهها کاری به کار هم دیگر نداشتند الا این را هم طبیعی می دانست که پس از سالهای طولانی زندگی زناشویی گرایش زوجها به یک دیگر کم شود. اما انگار شوهرش جور دیگری فکر می کرد. اینطور که به نظر می آمد دیوید نسبت به زنش سرد شده بود. اما بدش نمی آمد با دیگر زنها باشد. تا امروز الا آشکارا از دیوید نپرسیده بود که به او خیانت می کند یا نه یعنی تردیدهایش را بروز نداده بود اینکه حتی نزدیکترین دوستانشان از وضعیت بیخبر بودند باعث میشد شد راحت تر خودش را به ندانستن بزند مجبور نشده بود به کسی توضیح بدهد با رسوایی ها یا شایعه های شرماورد مواجه نشده بود پیدا بود دیوید کارهایش را چنان بی سر و صدا و مخفیانه انجام می دهد که کسی کمترین بوی نبرد اما هرقدر هم که مخفی کاری کنی خیانت بوی خاص خود را دارد و الا این بو را تشخیص می داد. راستش الان که به گذشته نگاه می کرد برایش سخت بود رابطه علت و معلولی قضیه را مشخص کند اول کدام پیش آمده بود چون شوهرش به او خیانت کرده بود او هم دیگر به خودش و بدنش اهمیت نمیداد. یا اینکه ابتدا او نسبت به تناسب اندام و کلاً خودش و بدنش بی‌اعتنا شده بود بعد دیوید به دیگر زنها تمایل پیدا کرده بود، درست نمیدانست. به هر حال نتیجه یکی بود، پس از گذشت بیست سال و داشتن سفرزند چراغ زندگی مشترکشان خاموش شده بود. در سه ساعت بعدی، الا همانطور که هزار جور فکر و خیال توی سرش وول میزد آرام آرام آشپزیش را هم می کرد. گوجه فرنگی قاج کرد، سیر له کرد، پیاز سرخ کرد، سس جوشاند، پوست پرتقال رنده کرد، خمیر درست کرد. نصیحتی را که مادر دیوید در روز نامزدیشان کرده بود، هیچ وقت فراموش نمی کرد. هیچ چیزی مثل نان تازه مرد را به خانهش وابسته نمی کند. مبادا از سوپرمارکت نان بخری، نان خودت را خودت بپس. میبینی چه معجزهها ها میکند. الا که تمام بعد از ظهر را کار کرده بود، صفری سنگین و رنگین و زیبا چید. دستمال صفرهای کاغذی را به شکل مسلس تا کرد. شمهای عطری روشن کرد. با گلهای سفید و زرد، دستگلی پهن و زیبا درست کرد و وسط میز گذاشت. بعد دسمان صفرهای پارچه ای را لوله کرد و توی حلقه های فلزی گذاشت. سرانجام کارش که تمام شد میز شام عینا شده بود مثل میزهایی که در مجله های دکوراسیون عکسشان را میاندازند. خسته شده بود. اما ارسشش را داشت وقتی دید کاری برای انجام دادن نمانده تلویزیون آشپزخانه را روشن کرد و به تماشای اخبار محلی نشست در بیست و چهار ساعت گذشته در بستان روانشناس جوانی را در خانه چاقو زده بودند در بیمارستانی آتش سوزی شده بود چهار دانش آموز دبیرستانی را به دلیل نوشتن کلمات نامناسب روی دیوارها و مجسمهها بازداشت کرده بودند الا هر خبر جدیدی که میشنید کمی نگرانتر میشد حتی در شهرکهای حومه هم که امن ترین جاهای آمریکا به حساب میآمدند وضعیت اینطور ناامن است آن وقت آدمهایی مثل عزیز زاهارا چطور جرأت می کنند به مناطق عقب افتاده دنیا بروند؟ پیدا بود عجیب و پیش بینی بودن وقایع سبب می شود مثل خودش با نگرانی خودشان را گوشه خانه حبس کنند. اما همین شگفتی های دنیا باعث می شود مثل عزیز از سیاحتی به سیاحت دیگر از ماجرایی به ماجرای دیگر کشیده شود. همین وضعیت بیش از هر چیز دیگری مایه حیرت اللا میشد. چطور می شود علتی واحد دو معلول اینقدر متفاوت به بار آورد؟ خانواده روبینشتاین شب ساعت هفتونین دور میز شام، که به قابل عکسی بینقص میمانست نشستم. شامهای روشن به اتاق پذیرایی حال و هوایی شاعرانه و شیک بخشیده بود. اگر الان کسی میآمد و از پشت پنجره آنها را میدید گمان میکرد خانوادهای بینقص و به اندازه نور شامها ظریفند. حتی نبودن جانت باعث نشده بود این تابلوی خوشبختی دچار خلل شود. اورلی و ایوی بیوقفه درباره اتفاقات مدرسه حرف می زدند. الا یک بار هم که شده از پرچانگی دو قلوها خوشحال بود. خودش را مدیون بچه ها که پردگاه سکوت میان او و شوهرش را پر کرده. با گوشه چشم دیوید را تماشا کرد که چنگالش را در میگو فرو میکرد به دهان میبرد و بعد آهسته آهسته می جویدش. شوهرش را کنار زنی دیگر مجسم کرد. معلوم نبود چرا زنی که پیش چشم مجسم می کند منشی جوان دیوید نیست بلکه یکی از ستاره هالیوود، جولیا رابرتس است زن سبزی که در ذهنش جان می‌گرفت هیکلی ورزشی ورزشکاری داشت و خیلی از خودش مطمئن بود آنقدر آرایش کرده بود که صورتش برق میزد. باز در خیال خود شوهرش را دید که کنار آن زن نشسته و درست همان موقع و همانجا در حالی که قزایش را که طبق دستور کتاب هنر آشپزی آسان پخته بود میخورد و شوهرش را با آن زن پیش چشم مجسم میکرد انگار فیوزی در کله الا پرید خونسردانه متوجه واقعیتی شد بله شاید آدمی جربزه و بیش از حد وابسته به خانوادهش بود بله شاید در طول زندگی یاد نگرفته بود روی پاهای خودش بایستد اما ممکن بود روزی ناگهان همه چیز و همه کس را رها کند و برود. آشپزخانهش اش را، سگش اش را، کلوچه های اش را، شامهای معترش را، بچههایش را، خانه شیکش را، همسایههایش را، مهمانی های به صرف کباب را، کتاب های آشپزی ردیف شده روی تاخچههایش را و غیره. می توانست همشان را همان جور بگذارد و با یک شمدان از این در بیرون برود. می توانست مثل ماهی به دنیای مملو از هر جمرج بیرون شیرجه بزند. بله. الا روبینشتاین آن شب فهمید که روزی به شکلی کاملا غیرمنتظره ممکن است طاقتش تاق شود و خودش را در دنیای دیوانهای بیابد که سالها بود با کنجکاوی و نگرانی و پیشداوری های فراوان در برنامه اخبار تلویزیون به تماشایش می‌نشست.